صفحه 295 صفحه 295 دوستان من که به هیچ فش توجه نداشتند خود سیاه از آن گیاهان نمیخورند از فرط گرسنگی و بیقضایی بیدرنگ شروع به خوردن شدند من که از اول فکر میکردم در این عمل نیرنگی باید نهفته باشد از خوردن گیاهان خودداری کردم و تونه نکشید که دوستانم پس از خوردن گیاهان سهم و شعور خود را از دست دادند و سخنانی می گفتند که نشان می داد به کلی نیروی عقلانی خود را از دست دادند بعد از خوراندن گیاهها سیاهپوستان دوستان ما را وادار کردند که تا می توانند به خوردن برنج بپردازند آن هم برنجی که با روغن نارگیل آغشته گردیده بود و شکم آنها را از برنج پر کردند و چون فهم و نیروی تشخیص خود را از دست داده بودند با ولع بسیاری به خوردن برنج ادامه دادند. من هم بر اثر فشار گرسنگی مقداری از آن را خوردم ولی در حدی که از حالت ضعف و رنجوری خارج شوم. این شیوه را سیاهاپوستان بهکار می بردند که با از بین بردن فهم و شعور و پدیدآورن اشتهای زیاد من و دوستانم را وادار سازند که هرچه میتوانیم از این برنج بخوریم تا هرچه زودتر همگی ما را پروار کنند. و در واقع با این ترتیب غذای خوبی را برای خود ترتیب می‌دادند. دوستان من متأسفانه دیگر قادر نبودند از وضعیت خود و روش سیاه‌پوست‌ها چیزی درک کنند. سیاه‌پوست‌ها دوستان مرا که فرده شدند، یکی بعد از دیگری خوردند. اما چون من لاغر و استخانی بودم، مرا به حال خود گذاشته بودند تا به قدری کافی فر بدهم. ولی من بر اثر ناراحتی و ترس و نخوردن غذای کافی روز به روز لاغرتر می‌شدم. من رنجور و ناتوان بودم و حالت افسردگی داشتم. سیاپوستان هم زیاد به من توجهی نداشتند. من هم از این موقعیت استفاده کردم و در یکی از روزها مسافت بسیاری پیمودم و از محلی که در آنجا به سر می بردم بسیار دور شدم و فرار کردم. هنگامی که من فرار کردم، فقط مرد سالخورده در آنجا بود و سایر بومی ها مانند روزهای دیگر از محلشان بیرون میرفتند و هنگام غروب به مسکن خود مراجعت می می‌کردند. وست سالخوردی ای که متوجه من بود و نسبت به من مشکوک شده بود از راه دور با صدای بلند فریاد کشید و مرا دعوت بازگشت نمود ولی من اهمیت ندادم و با سرعت هرچه تمام تر به فرار خود ادامه دادم و تا پایان روز راه رفتم. و فرار رسیدن شب اندکی استراحت کردم باقیمانده غذایی را که همراه خود داشتم خوردم و دوباره با سرعت به راه خود ادامه دادم و هفت روز تمام راه رفتم و سعی کردم از نقاط مسکونی عبور نکنم تا گرفتار بومیان آدم نشوم نشمم شبها را بالای درختان نارگیل میگذراندم، از نارگیل و شیره آن رفع برستنگی و تشنگی میکردم. روز هشتم به دریا نزدیک شدم و برخلاف انتظارم چشمم به مردم سفید پوست افتاد که به جمعآوری فرفل که در آن محل فراوان کاشته نمی شود مشغول بودند این منظره را به فاد نیک گرفتم بدون ترس به میان آنان رفتم. همان که در مزاره فلفل به کار جمعوری مشغول بودند به زبان عربی سخن میگفتند خوشحال شدم که می‌توانم با آنها حرف بزنم با دیدن من از حالم جویا شدند و پرسیدند از کجا میایی چطور شد که به اینجا آمدی من هم با شادی بسیار شرح غرق شدن کشتی و اینکه چگونه عثیلی خوستان جزیره شده بودم را دادم آنها که درباره جزیره و بومی‌های آنجا اطلاعاتی داشتند گفتند این آدم آدمخوارند و اموجزه بوده که تو ای از دستانها جان سالم به من از درها ماندم تا محصول ففل خود را برداشتند و آن به کشتی سوار شده و به جزیره‌ای که از آنجا آمده بودند برگشتیم در آنجا مرا به حضور پادشاه خود برده و معرفی کردند من هم دوباره سرگذشت خود را در این سفر برای سلطان شرح دادم و او هم غرق در حیرت شد و جابه های گرانبها به من بخشید و دستور داد تضییرای شایانی از من به عمل آورند این محل جزیره آباد حاصل خیزی بود. از هر چیز به طور فراوان در آنجا یافت می و پایتخت آن مرکز بازرگانی مهمی به شما می رفت. این پناگاه بسیار دلپذیر بعد از تحمل آن همه ناراحتی ها و روبرو شدن با خطرها برای من محل بسیار مناسبی بود. خصوصا که پادشاه مهربان و رعیت همه گونه مجبات آساییش مرا فراهم کرده و من از هر جهت خوشنود بودم. پادشاه بیش از هرکس نسبت به من مهربانی نشان میداد و چون طرف لطف شاه بودم هرکس در دربار سعی میکرد به نحوی رضایت خاطر مرا به دست آورد به این ترتیب در ظرف مدت کوتاهی موقعیت من به آنچنان قابل توجهی تبدیل شد که مرا به چشم بیگانه نگاه نمی‌کردند، بلکه یک همشهری قابل احترام و عزیز به شما میآوردند در میان این مردم و حتی خود شاه رسم عجیبی بود و آن اینکه کدام از آنها هنگام اسب سواری از افسار اس استفاده نمیکردند کردند و این امایه‌ی شگفتی من بود تا آنکه روزی از سلطان پرسیدم چرا شماها افسار به کار نمیبرید سلطان پاسخ داد تو درباره یه چیزی صحبت می‌کنی که نه آن را دیده این و نه درباره‌اش از کسی سخنی شنید این من بدون معطلی نزد صنعت‌کاری در جزیره رفتم و شکل و نمونه‌ی زین اسب را به او نشان دادم و او هم به طرف نمونه طرح زین اسبی درست کرد و به من داد. من طرح زین را گرفتم و آن را با مخمل و چرم پوشاندم و اطراف حاشیه آن را با مغزی طلا آرايش دادم و سپس به تکان چرمسازی رفتم و نمونه افسار و یراق عثر را به او دادم و او هم از روی آن افسار و یراق چرمی قشنگی تهیه کرد. سپس به دکان آهنگری رفتم، نمونه رکاب عثر را به او نشان دادم و او هم یک جفت زیبا برایم ساخت و به من داد. انگاه به حضور سلطان باریافتم و آنها را به او نشان دادم را روی اسب جای داده و ها و افسار را هم به ترتیب به جای خود قرار دادم سلطان بی درنگ پا در رکاب کرده بر اسب سوار شد و افسار اسب را گرفت و حال فوق‌العاده‌ای در او به وجود آمد و مرا مورد تحسین قرار داد و هدایای گرانبهایی به جای این خدمت به من مرحمت فرمود من که وضع را چنین دیدم لازم دانستم که برای وزرای شاه و مأمورین و مقامات بلند بلندپایه مملکتی هم همین خدمت را انجام دهم بعد از مدت کوتاهی آنها هم از مزایای زینویراق و رکاب در حین سواری من شدند این اقدام من موجب مسارت خاطر همه آقایان گردید و هرکدام از آنها هدیه گرانبهایی به پاس این خدمت به من دادند و من در مدت کوتاهی دارای ثروت بسیار شدم خدمتگزاری من در نظر سلطان به حد کمال رسید و رضامندی خاطر ملوکانه را به دست آوردم روزی سلطان به من گفت سندباد تو مورد مهر و محبت من هستی و همه مردم این مملکت تو را میشناسند و باید تو را احترام کنند و رفتار مرا نسبت به تو سرمشق خود قرار دهند من فقط یک چیز از تو انتظار دارم بلافاصله پاسخ دادم من فرمانبردار و خدمتگذار با وفای سلطانم و برای اثبات این امر حاضرم عوامل سلطان را بیچونو چرا اجرا کنم؟ در این هنگام سلطان گفت: "صنباد، خواسته من آن است که تو ازدواج کنی و در این سرزمین بمانی و دیگر به فکر بازگشت به زادگاه خود نباشی." سلطان یکی از زیباترین و ثروتمندترین بانوان درباری را به عنوان همسر آینده من معرفی کرد. من قادر نبودم خواسته سلطان را رد کنم. جشن عروسی پرشکوهی برپا گردید و اعیان و رجال درباری در آن جستند. مراسم عروسی انجام گرفت و من هم با همسر خود در زیبایی زندگی زن وشوی خود را آغاز کردیم و مدتها از زندگی لذت میبردیم من... من زندگی مجلل و شاهانهای داشتم صاحب همه چیز بودم همسر زیبا و شایسته ثروت فراوان مقام عالی و همنشین سلطان ولی باز هم خود را راضی نمیدیدم علت آن این بود که از دادگاه و دیارم دور بودم با همه این ها و امتیازات باز هم خود را بیگانه حس میکردم و این شهر زیبا را زادگاه خود به شما نمیآوردم. آوردم قصد داشتم در اولین فرصت از این شهر فرار کنم و به هر نحفی هست خود را به بقداد برسانم من که در فکر فرار بازگشت به آب و خاک خود بودم زن و همسایه من که با او دوستی ای داشتم بیمار شد و طولی نکشید که چشم از جهان فرو برست. من به دیدن دوست خود رفتم تا او را تسلی دهم. وقتی با او روبرو شدم چهرهی در همه او از غم بزرگ او حکایت می‌کرد به او گفتم خداوند به تو عمر طولانی دهد و غم آخر تو باشد من دعا می‌کنم که قدرت تحمل این اندوه سنگین را داشته باشی دوستم پاسخ داد چگونه برایم طول عمر آرزو میکنی من شاید ساعتی بیشتر زنده نباشم اکاش آنطور که تو برایم آرزو میکنی میشد من برای تو عمر طولانی آرزو می کنم، ولی عمر خودم به پایان رسیده است زیرا همین امروز باید همراه جنازه همسرم دفت شوم. این شیوه این سرزمین است و تا آنجا که یاد دارم راهی برای فرار از این روش وجود ندارد. به این معنی که شوهر باید به همراه زن خود و همچنین زن باید به همراه شوهر خود در گور گذاشته شوند. هیچ کس تواند از این مرگ اجباری رهایی یابد و این قانونی است که از زمانهای گذشته تا حال ادامه داشته است. در همین حال که دوست من مننداری این روش غیر انسانی که همه مردم معتقد به اجرای آن بودند توضیح میداد رفته رفته دوستان و خویشاوندان و همسایگان یک یک در آنجا حضور یافتند و پس از مدتی به صورت انبوهی از مردم درآمدند که در مراسم خاک سپاری همراهی کنند. آنها پیکر بیجان زن همسایه را با باگران و زیباترین زیبا پوشانده و با جواهرات و زیورالات او او را زینت داده بودند. و در حالی که او را در داخل تابوت روبازی جای داده بودند، روی سر خود نگه داشته، و راه خود را به سوی محلی که برای دفن کردن جنازه در نظر گرفته شده بود، آغاز کردند. شوهر بخت برگشته هم در پیش پیش جمعیت، جنازه همسر خود را مشایعت می کرد. آنها از دامنه کوه مرتفعی بالا رفتند، تا به محلی رسیدند که تخت سنگ عظیمی را از دهانه چاه بسیار عمیقی برداشتند و جنازه را با تمام جامعهایی که در برداشت به درون چاه سرنگون ساختند آنگاه شوهر بعد از آنکه خیشان دوستان را ودا کرد و آنها را بوسید و بدون هیچ گونه مقاومتی در داخل تابوت سرباز جا گرفت و ظرف آب و هفت قرص نان در کنار او در تابوت گذاشتند و سپس او را هم به همان ترتیب و تشریفات همسرش به درون چاه سرنگون ساختند همین که تشریفات خاک سپاری به پایان رسید تخت سنگ را بر دهانه چاه قرار دادند نیازی به توضیح ندارد که در میان گروه مشایعت کنندگان من تنها فردی بودم که از مشاهده این مراسم غیر انسانی و زنده به گور کردن بیگناهی بی‌گناه می بردم و دچار عذاب وجدان بودم در حالی که سایر مشایعت کنندگان انجام این مراسم برایشان امر به عادی به شمار می‌آمد و کمترین ناراحتی حس نمیکردند. من نتوانستم احساس و تأثیر خود را به اطلاع سلطان نرسانم. معا این به حضور سلطان شرفیاب شده و در کمال احترام گفتم پادشاه ها رست خاک سپاری همسر زنده را به همراه همسری که فوت شده است مشاهده کردم اما به نظر من اقدام خدا پسندانی نیست زیرا مرگ امر طبیعی است ولی قتل عمدی همسر زنده امری است غیر طبیعی و ضد انسانی من سیاهی هستم که کم و بیش به سریا سرزمین ها و کشورهای جهان رو ام و با مردم و قوانین اقلیم های مختلف در تماس بودم. ولی در هیچ کجا چنین قانون ظالمانیی مشاهده نکردم سلطان که از سخنان من تعجب کرده بود رو به من گرد و گفت سند باد چه میگویی؟ این قانون این سرزمین است من هم بعد از فوت ملکه باید با او به گور بروم و همینطور هم پس از مرگ من ملکی همسر من ناچار است که با احترام به قانون همراه من دفت شود و کسی در این بار ایرادی ندارد بعد از شنیدن سخنان سلطان گفتم ای جوانبخت آیا این قانون غیرعادلانه در مورد بیگانگانی که به این سرزمین می آین قابل اجراس؟ پادشاه در حالی که در برابر پرسش من لبخندی بر لبهایش نقش بسته بود تا داد البته این قانون برای همگان است و درباره هر فردی که در این سرزمین متعهل باشد و همسرش را از دست بدهد اجرا خواهد شد و همگانی است و استثنایی هم ندارد بعد از آن که سخنان سلطان را شنیدم و دانستم که خارجی‌ها هم در این جزیره مانند خود اهالی شناخته می‌شوند، فوق‌الاده ناراحت و نگران شدم که اگر خدای نکرده همسر من زودتر از من فوت کند، تکلیف من چیست؟ و من هم چاره ای ندارم جز آنکه با همسرم سرم به خاک سپرده شوم. این فکر مرا سخت و چار آزار و نگرانی می‌کرد و چاره و درمانی هم برای فرار از آن وجود نداشت. آگاهت خود را دلداری دادم و اندیشیدم جز صبر و بردباری کاری از من ساخته نیست. و باید توک به خداوند بی همتا کنم و راضی به رضای او باشم. از آن پس هر زمان که همسرم دچار کسالت و یا ناراحتی جسمانی می گردید، از نگرانی و ترس بر خود می لرسیدم که مبا و بیماری او درمان نشود و بمیرد. اتفاقا از آن چه میترسیدم بر سرم آمد زیرا همسرم بیمار شد و درمان پزشکان موثر واقع نشد و بالاخره در ظرف چند روز بدرود زندگی گفت. شما میتوانید حال مرادر آن لحظه حدس بزنید. وقتی فکر می کردم که من زنده به گور خواهند کرد، چنان احساس ناراحت کنندهی به من دست می داد که هنگام خوردن من توسط آدم ممکن بود به من دست دهد، ولی چاره نداشتم، مگر در برابر تقدیر سر تسلیم فرود آورم. سلطان و درباریان بلندپایه با حضور خود در این مراسم و شکوه این تشریفات می افزودند و همراهی اعیان و اشراف شهر نیز بر عباحت این خاک اضافه می کرد. موقعی که همه چیز برای آغاز تشریفات آماده گردید، جنازه را که با گرانبهاترین و زیباترین جامعه ها آراسته بودند و با بهترین زیورالات و جواهرات بیمانند زینت داده بودند، در داخل تابوت قرار دادند. مراسم دست جمعی آغاز شد. دومین نفری که با یک نقش خود را در این صحنه حوزن آور ایفا می کرد من بودم که با یک دنیا اندوه در حالی که سیل اشک از چشمانم روان بود و در برابر سرنوشت ناگوار خود به ماتم نشسته بودم، در پشت جنازه به حرکت درآمدم. قبل از که به پای کوه برسیم، من خطا به جمعیت حاضرین سخنانی ایراد کردم. روی سخنم در درجه اول با سلطان بود و در درجه دوم به کلیه کسانی که اطراف ما را احاطه کرده بودند. و در همان حال التماس و زاری خم شدم تا گوشه قباویان‌ها را ببوسم و از آنها تقاضای رحم کنم. و بگویم که من از اهالی این شهر نیستم و شایسته چنین کیفنی نمی باشم زیرا این قانون برای اهالی این جزیره است احساس کردم سخنان گرم و پرحرارت من در آنها کمترین اثری نداشته و برعکس تا بیشتری نشان میدهند که هرچه زودتر جنازه همسر من را در چاه سرنگون سازند و ای بعد از آن مرا در تابوتی که سرش باز است به و ظفی آب و هفت قرص نان هم در آن جای دهند در این هنگام تشریفات سنمساز آغاز گردید. مرا در تابوت جای دادند و به داخل چاه فرو بردند. همین که به انتهای چاه رسیدم، بر اثر نوری که از بالای چاه به درون تابیده بود، متوجه شدم که وضعیت این محل زیرزمینی از چه قرار است. این چاه غار وسیعی بود که به نظر می‌رسید گودی آن حدود پنجاه متر باشد. به محض قرار گرفتن در کف چاه، بوی تعفون شدید که از اجساد مردگان موجود در هر دو طرف در فضا منتشر شده بود مرا سخت آزار می تصورم بر این بود که بعضی از اجساد در مرحله قرار داشتند که گویی واپس نفس خود را می کشیدند. به هر حال همین که به پایین این فضای زیر زمینی رسیدم بدون معطلی از تابوت بیرون آمدم و خود را از جنازه همسرم دور کردم و در حالی که بینی خود را با انگشتانم گرفته بودم، بر روی زمین دراز کشیدم و مدتی طولانی در آنجا ماندم آنقدر گریه کردم که سراپا کاملا خیس شده بودم در آن آنگار به سرنوشتی خود می و با خود می گفتم که آن چه برای انسان مقدر شده است همان خواهد شد و آنگاه به سرزنش کردن خود پرداختم و به خود گفتم سر باز تو همه چیز داشتی و خداوند به تو نیمت و ثروت فراوان بخشیده بود زندگی آرام و آسوده ای داشتی. که همه بر آن می‌خوردند چرا تماک کردی و باز به فکر سفر برای ثروت بیشتر افتادی آیا تو خود را باعث این همه بدبختی نمی‌دانی خداوند تو را از میان طوفان‌های مرگبار و امواج سهمگین دریاها نجات بخشید و به ساحل سلامت رسانید تو همه این سختی‌ها را فراموش کردی و دوباره راه سفر را در پیش گرفتی چرا برای آنکه زیاده طلب هستی اگر از خانواده از زندگی راحت میکردی حال به این بدبختی گرفتار نمیشدی. من با فریاد و ناله خود هیاهوی در فضای قار تولید کرده بودم و سر و بدن خود را بیهوده بی دیواره قار میزدم و از فرط نومیدی و خرش خود می میپیچیدم. تنها راه رهایی از آن همه عذاب روحی آن بود که از خداوند بزرگ تقاضای مرگ کنم. با وجود این باید اعتراف کنم در برابر این همه ناملایمات باز احساس میکردم نمیخواهم بمیرم. دلم میخواست که بیشتر زنده بمانم و از خوشی ها و لذات دنیا بهره‌مند شوم. به ترزیج میل به حیات در من قوت گرفت و دلم میخواست کاری کنم که روزهای بیشتری در آن دخمه زنده بمانم. من که به خاطر تاریک بودن فضا نمیتوانستم اطراف خود را خوب ببینم، ناچار بودم با دست مالیدن به اطراف موقعیت خود را تشخیص دهم. ناگهان به خاطرم رسید که در داخل تابوت مقداری نان و آب وجود دارد. بیدرنگ نان و آب را برداشتم و مقداری خوردم و بقیه را برای روزهای بعد گذاشتم. تاریکی و ظلمت به قدر زیاد بود که تشخیص شب و روز کاملا غیر ممکن بود، ولی همیشه می توانستم تابوتم را پیدا کنم و بعد از چند روز عادت به تاریکی کرده بودم و می‌فهمیدم که فضای این قار و تعداد اجساد مردگان بیش از آن است که در آغاز ورودم به اینجا فکر می‌کردم. بعد از آن که آخرین قرص نان و آخرین قطره آب به پایان رسید، من هم خود را برای مرگ آماده کردم همین که آماده مرگ بودم ناگهان صدای بلند کردن تخت سنگ روی دهانه چاه را شنیدم چون به بالا نگاه کردم در پتوی نور بیرون مشاهده کردم که جنازه مردی را به درون چاه سرازیر کردند هنگامی که انسان دچار استراب شود دست به هر کاری می زند ولی آن که آن کار غیر اخلاقی باشد آنگاه زن او را در تابوت به درون چاه سرازیر کردند و همین که تابوت او به زمین رسید، به سوی او حمله کردم و با استخوان بزرگی که به دست آوردم، دو سه ضربه کاری بر سر او زدم و به این ترتیب او را کشتم تا آب و نان او را تصاحب کنم و بتوانم چند روزی بیشتر زنده بمانم. بعد از این امر نان آب را برداشتم و پس از دو سه روز جنازه زن دیگری را به ترتیب گذشته به پایین فرستادند و پشت سر او هم همسر زنده او را به داخل قار سرازیر کردند. همین که تابوت مرد زنده به پایین روی زمین جای گرفت، به او حمله ور شدم و با همان ضرباتی که با تکیه بزرگ استخان بر سر او وارد آوردم، او را به قرد رسنده و نان و آب داخل تابوت را برداشتم. بعد از آن تعداد تابوت مرده و زنده زیاد شد و به نظر رسید که مرگ و میر در شهر رو به افسونی می باشد. از این وضع خوشحال شدم که تا مدت ها نگران کم بوده نان و آب نخواهم بود، زیرا من و به تعداد کافی تابوت از دهانه چاه سر می گردید در یکی از روزها که تابوتی را به درون چاه می‌فرستادند صدای حرکت چیزی به گوشم رسید که از کنار من در آن فضای تاریک عبور می‌کند در حالی که صدای نفس نفس زدن او را هنگام حرکت می‌شنیدم فوراً به همان سمتی که صدا می‌آمد حرکت کردم همین که نزدیک شدم حس کردم آن چیز در تاریکی مشغول نفس کشیدن است و همین که نزدیک شدن مرا احساس کرد با سرعت از من دور شد من رد تنفس را دنبال کردم حس کردم گاهی آن چیز مرموز در تاریکی می ایستد ولی باز همین که من خود را به او می او هم از من فرار می کرد. من آن چیز را آنقدر تحبیب کردم که در تاریکی مشاهده کردم نوری شبیه به ستاره من به سوی آن نور رفتم گاهی آن را گم می کردم ولی باز آن را می آفدم. سرانجام پی بردم آن موجود از روزنه بزرگی که در دیواره قار است و کافی برای عبور یک نفر است به درون قار آمده است من هم در کنار آن روزنه ایستادم و به استراحت پرداختم زیرا مدت با سرعت به دنبال آن موجود در حرکت بودم بعد از پایان استراحت خود از همان روزنه قار خود را به بیرون رساندم و هوای آزاد را تنفس کردم و آن را میبریدم. و بعد از اندکی راه خود را در ساحل دریا یافتم شما می توانید شادی و خوشحالی مرا در کنار دریا حس بزنید زیرا کسی که از میان مرده ها و از درون گورستان تاریک رهایی یافته باشد در واقع دوام پا به عرصه گیتی گذاشته است هنوز باور نمی کردم که زندم و آنچنان می بینم واقعیت دارد اما بعد از آنکه از حالت ناباوری خارج شدم و به خود آمدم متوجه شدم آن چیزی را که من در درون قار تقیید می کردم موجودی بوده است که از دریا وارد قار می شده و به سراغ اجساد مرده ها می رفته و از آنها تغذیه می کرده است و بعد دوباره از درون روزن خارج شده و به دریا باز می گشته است در اینجا فهمیدم که کوه کذایی بین دریا و شهر قرار گرفته است ولی هیچ گونه راه و جاده آن را به شهر وصل می کند سخه های بزرگ سنگی با شیب زیاد در کنار دریا به نظر می رسیدند که عبور از آنها دشوار بود من از شغل روی زمین افتادم و به درگاه پروردگار میهمان که مرا از آن مهلک نجات داده بود سجده کردم و از روشنایی پرجلوه و زیبایی روز در فضای باز در کنار دریا لذت بردم در این هنگام اشتهای فراوانی احساس کردم به درون قار رفتم و نانا آبی از یکی از تابوت‌ها برداشته بیرون آمدم و در کنار ساحل به خوردن شدم و خود را از هوای آزار کنار دریا انباشتم. بعد از آنکه سر شوق آمدم به یاد آوردم که باید جواهرات متعلق به جنازه‌هایی را که در تابوت‌ها جای داده بودند در اختیار خود درآورم. برای این منظور دوباره به درون قار رفتم و در تاریکی خضا به طور کورمال اطراف را لمس کردم. و از درون تابوتها آنچه های قیمتی بود برداشتم و همه آنها که به صورت تلی در آمده بود در کنار ساحل روی هم انباشتم آنها را بسته بندی نمودم و ریسمانهایی که جنازهها را با آن در تابوتها بسته بودند برداشتم و محکم دور آنها بستم در کنار دریا روی هم گذاشتم و به صورت مال و تجارهٔ بزرگی درآمد در انتظار ورود کشتی ایستادم خوشبختانه فصل مناسبی بود و باران نداشتیم آسمان صاف و لاجوردی بود مدت دو یا سه روز همچنان در انتظار باقی ماندم تا آنکه از دور بادبانهای کشتی بزرگی که از بندر حرکت کرده بود نمایان شد آنقدر سب کردم تا نزدیک شد آن وقت پارچه سفید کتانی را که دور دستار خود بسته بودم از سر باز کرده و برای جلب توجه ناخدا و کارکنان کشتی آن را بالای سرم مگردش درآوردم. و همچنین با تمام نیروی خود فریاد کشیدم و ناخدا را به کمک طلبیدم. خوشبختانه ناخدا متوجه شد و قایقی با سرنشین به سوی من فرستاد تا مرا به کشتی سوار کند. وقتی قایق در کنار ساحل رسید، من به کمک قایقران بارهای خود را داخل آن گذاشتم و به سوی کشتی برگشتیم و بارها را در کشتی قرار داده و خودم هم روی عرشه کشتی رفتم. وقتی کارکنان کشتی پرسیدند که چگونه به این گوشه از دریا روی آوردهام پاسخ دادم که دو روز پیش کشتی حامل مسافرین که من هم جزو ها بودم دستخوش طوفان عظیمی شد و بر اثر تلاطم امواج در کام دریا فرو رفت و من خود را به این نقطه رساندم و در اینجا کالاهایی را که قبلا تهیه کرده بودم آماده کردم تا با کشتی هایی که از بندر عبور کرده و از این نقطه می‌گذرند به سفر خود ادامه دهم. بخت با من یاری کرد زیرا کارکنان کشتی توجهی نداشتند که مراد در چه نقطه‌ای به کشتی سوار اند و درباره صحت و خلاف اظهارات من کنجکاوی و پرسشید عمل نیاوردند و نپرسیدند که نوع مال تجاری را برای تجارت با خود هم کردم ناخدای کشتی بسیار خوشنود بود که مرا سوار کشتی کرده و از تنهایی در آن نقطه نجات داده است از سرگرم کارها و امور کشتی رانی و مسافرین بود که آنچرا من درباره کشتی غرق شده در اثر امواج دریا گفته بودم پذیرفت و به اظهارات من اعتماد کرد وقتی من در مقابل محبت او مقداری جواهر به او تارف کردم با بلندنظری نظری خود از پذیرفتن آن خود داری کرد. کشتی همچنان امواج را میشقفت و پیش میرفت تا از چندین جزیره عبور کردیم تا آنکه به جزیره سیلان رسیدیم از آن جزیره تا جزیره سرندیب مدت ده روز با کشتی باید سفر کرد، آن هم در صورتی که باد به طور عادی بوزد. پادشاه جزیره سیلان، تابع پادشاه جزیره سرندیب است. بعد از آنکه در این جزیره داد و ستد کالا های خود را انجام دادیم، دوباره به کشتی نشستیم و حرکت کردیم و چندین بندر را پشت و سر گذاشتیم تا وارد خلیج فارس شدیم و از آنجا هم به بسته و از بسته به شهر بغداد رسیدیم. در این سفر ثروت فراوانی را با خود همراه آوردم که از شرحش خودداری می کنم. خدا را سپاس فراوان گفتم و با شادی و تندرستی به خانواده خود پیوستم و به نشانی شوق به درگاه ایزد متعال تمام فقر و اشخاص تنگ دست را دستگیری کردم و به هر کدام ثروت کافی بخشیدم. سخنان سندباد در اینجا در مورد چهارمین سفرش که از سفرهای سگانه قبلی جالب و حیرت انگیز بود پایان پذیرفت. آنگاه صد عدد سکه طلا به هندباد بخشیده و از او و سایر میهمانان دعوت کرد که فردا شب در ساعت مقرر برای شام و شنیدن شرح سفر پنجم او به قصر سندباد بروند. هندباد و سایر میهمانان از قصر سندباد را ترک گفتند. فردا همه میهمانان به قصر سندباد آمدند و بعد از صرف شام سندباد سفر پنجم خود را بیان کرد. سفر پنجم سندباد بحری شادی‌ها و ترسها که نتیجه سفرهای قبلی بود و جازبه های آن هنوز در اعماق وجودم به من گرمی و شوق می‌بخشد و تاثیر آن به حدی بود که رنج حوادث سفر را در برابرم ناچیز جلوه می‌داد. چنین حالت و لذتی مرا بران داشت که باز هم به استقبال سفر تازه‌ای بروم. این کالاها این مال و مال تجارهای مرد نیاز را تهیه و دستور دادم آنها را حاضر کرده و در بهترین و آبادترین بنا آمادهی نگهداری کنند و همچنین سفارش دادم کشتی بزرگ و مجهزی برایم بسازند که خود ناخدایی آن را به عهده گیرم و دیگر نیاز به ناخدایی دیگر نداشته باشم مدتی در انتظار بودم تا ساخت کشتی به پایان رسید آنگاه خود و چند تن بازرگان دیگر که از ملیت‌های مختلف بودند به کشتی نشستیم و بارهای آنها را هم در کشتی قرار دادیم و با باد موافق بادبانها رو کشیده و سفر دریایی خود را آغاز کردیم. نخستین محلی را که بدانجا پای گذاشتیم، جزیره بود که سراسر آن را صحرای پهناوری تشکیل می‌داد و در آنجا تخم رخ، همان پرنده عظیم‌جثه‌ای را که قبلا شرح داده بودم، یافتیم و دیدیم که جوجه آن در حال شکستن تخم است و منقار بزرگ خود را بیرون آورده است. بازرگانانی که مسافرین کشته مرا تشکیل می‌دادند، ز گرد تخم رخ گرد آمدند و هر کدام سعی می سوراخی در جدا تخ پدید آورند و جوجه داخل آن را تکه تکه کنند تا هر یک مقداری از گوشت آن جوجه را بردارند و کبابی از آن برای خوراکی خود تهیه کنند. با وجودی که سعی کردم مانع آنها از این کار شوم اعتناایی به سخنان من نکردند. هنوز بزم بازرگانان با کبابی جوجه رخ به پایان نرسیده بود و مشغول لذت بردن از گوشت جوجه رخ بودند، دو که ابر سیاه بزرگ در آسمان دوردست نظر همه ما را به خود شده.